یا بنای ابدع قبل نظرک بل به الهک پسرم در وسیعت نامه امیر المومنین پسرم قبل از این که در هر چیزی نظر کنی و فکر کنی و دنبال تحقیق و درکش برایی قبل از هر چیز استعین به الهک از خدا کمک بگیر ابده قبل نظرک بالاستعانه من الهک از خدا کمک بخوا که خدا تو رو توفیق بده و ترک کل شائبت او لجت کفی شبهه او اسلمت که اله ولاله از خدا بخوا که خدا یا راه رو بر من واضح کن و آشکار کن و چیزی که مرا در شبهه بیندازد یا چیزی که مرا گمراه کند خدایا جلوی پای من نیاد تو مرو توفیق بده تو مرا هدایت کن قبل از اینکه در هر مطلبی تحقیق کنی اول از خدا کمک بگیر تحقیق کردن و درس خوندن و استدلال کردن و همه همه ای اینها اینچنین نیست که صد درصد صد تو را به واقع برساند چون هدایت به دست او از قرآن دیگه چیزی کتاب هدایتی بهتر میخوای یوزلو بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن و ننزلو من قرآن ما هو شفاء و رحمتون للمؤمنین ولا یزید و والمین الا خسارا به چی میگردی؟ دیگه کتابی بهتر از قرآن سراغ داری؟ ولی قرآن هم گمراه میکند بعضیارو، رو هدایت میکند بعضی رو برای بعضی شفاع و نور است برای بعضی خسارت و زیانه از خدا باید خواست یه شبی از شبها سه چهار هفته فیش با کم زیادش بود ارز کردم به این که هر کس که وارد یک مطلب بشه که حق رو نمی آبه. وارد در بحثش بشه که حق رو درک نمی‌کنه، کنه اونا رو شرح دادم دیگه نمی بدم ولی اجمالا ارز می‌کنم تقلید اناد، تعصب، لجاج، دوستی و دشمنی ها ها، حب دنیا، هواپرستی، شهوت و غذب اینا جلوی حق رو میگیره نمزر آدم حق رو درک بکنه من عشق شیئا اعشا بسره و امر و قلبه و هوایندو رو به این غیر بسیره و یسمه و به اون غیر سمیعه کسی که عاشق چیزی باشد دیگه نمیتونه واقع رو ببینه نمیتونه خیر و شر رو او رو درک بکنه پس بنابراین اینا رو من باید رفت کنم یک فکر آزادی که آزاد از علاقه به دنیا آزاد از علاقه به شهوت و قذب و هوا و هوس و تقلید و عصبیت و امثال ذالک که رو قبلا دادیم و نمیخوام دیگه شما رو معتل کنم اینا رو باید رها کنم مگه کسی میتونه از زور اینا در بره به این زودی؟ فستن قبل النظرک بالاستعانت به الهک بگو خدایا را رو به من نشون بده درست برم عوضی نفهمم درست درک کنم مطلب را پس بنابراین اول بسم الله اینه اولا باید اینا رو کنی این اشکالاتشو برطرف کنی تا بفهمی بعد از اینم که فهمیدی یه حال پذیرش و زیربار حرف حق رفتن تازه لازم داره انسان ممکنه مطلبی رو بفهمه درست هم بفهمه ولی زیر بار نمیره اینام باید از خدا بخواه خدا یه چنین حالتی به من بده تو این دعاها که حالا یادم کجاست دیدم ولی دعا دو دعا شاید مکررم به این مضمون باشه إلهي أرني الحق حقا فاتبعه والباطل باطلا لنفاجتن به ولا تجعل علي متشا بهن فاتبع أهواءي بغير هدنك خدایا به من حق رو واضح نشون بده به من باطل رو واضح نشون بده مطلب رو یه جوری نباشه که بر من مشتبه بشه نفهمم حق کدومه نفهمم باطل کدومه اون وقت با میل و هوای خودم دنبالش برم و گمراه بشم پس خدا باید نشون بده اول از خدا بخواه هرچی میخوای در مطلب وارد بشی و بحث کنی و دقت کنی آیا این بحث و دقت تو حتما تو رو به واقع میرسونه؟ هزارون گیرودار این وسطشه اینا رو باید برطرف کنی و از خدا کمک بخوای و اگر از خدا کمک بخوای خدا یارد میکنه امیر سلام الله علیه در حق تلهب و زبیر این چنین میفرماید فرمد انهما لیعلمان انهما مختعان می دانن تله و زبیر که در خطا دارن میرن و لایج هلان آلمن می دانن که خطا دارن میرن این مطلب رو جاهل نیستن ولا رب آلمن و رب آلمن قد قتله جهله و علمه مأه لا ینفعه چه بسیار عالم ها که علم باهاش هست ولی جهالت و نادانی او رو داره میکشه پس از خدا باید خواست خدا رو تو تویاری کن که این راه هایی که من پیش گرفتم مرو به مقصد صحیح برسونه ارز می شود به اینکه؟ قبل نظرک البته این کلمه رو عرض کنم کسی که اون مقدماتی که دست خودشه درست انجام بده شهواتش رو بذاره کنار طالب حق باشه عصبیت و اناد و لجاج و تقلید رو بذاره کنار من طالب حقم هرچی که بود او رو میخوام بپذیرم اگه یه همچه حالتی براش حاصل شد و واقعا خودش رو مهیا کرد برای ای در زیل آیه شریفه اعلموا ان الله يحول بین المرء وقلبه خدای تعالی بین انسان و قلبش فاصله میشه روایات متعددی است که خدای تعالی بین انسان و قلبش فاصله میشه معناش این از امام اون چنین معرب کرده چندین روایت نمیذاره او باطل رو حق بفهمه یا حق رو باطل بفهمه خدا راه راهنماییش میکنه خدا راهنماییش میکنه نمیذاره او عوضی بفهمه ولی خدای تعالی چه افرادی رو راهنمایی نمیکنه ان الله لا یهدل القوم الفاسقین ان الله لا یهدل تو ظالمین ان الله لا یهدی من هو و مصرفون و ان الله لا یهدی همجور بخون لا یهدی های قرآن رو پس اون مقدماتش دست خودمه اونا رو باید برطرف کنم اونا رو باید برطرف کنم اگر مقدمات شما کردم دیگه منتظر کمک خدای تعالی باش امام میفرماد پسرم قبل از اینکه نظر کنی در امور اولا از خدای تعالی بخواه که به تو توفیق بده و اون چرا که را به شبهه و شک میاندازه و اون چرا که را سبب گمراهی و زلالتت میشه ازت برطرف کن این از خدا اول بخواه این کلمه هم کنم و تمام شد عرض می که یه آقایی به نام جندبب یا جندبب زهیر از دوستان امیر سلام الله علیه بود گفت به این که امیر سلام الله علیه دستور داد بریم برای جنگ نهربان ما امرو افتدیم در رکاب امیر المامین اومدیم در جنگ نهربان گفت من رفتم نزدیک این ملت این ها ببینم چه جور آدمایی هستن دیدم یک آدمای مقدس متدینه آثار زهد و تقوا از قیافه‌شون پیداست به تعبیر بنده پیشانیها از می‌شود به اینکه چیچی آثار سجود درش ظاهره و همچنین لباسهای عباد زهات برنستن تنشونه یا سرشونه لباسهای عباد و لهم له دوی که دویی نه مانند زنبور اصل قرآن میخوانند دعا میخوانند چنین آثار زهد و تقوی از قیافشون پیداست گفتم امیر ممنی میگه ما بیام اینهای بکشیم ما رو را انداخته بیمینات بکشی. و این همچه حالی که به من دست داد زود دور شدم از این لشگر خودم رو کشیدم یک کناری رفتم و لباسای جنگم و زره و خودم و فلان و اینا رو همه رو کردم و وضو گرفتم و درکت نماز خوندم گفتم خدایا اگر کشتن اینها و جنگ با اینها رضای توست یه جوری به من حالی کن که من بفهمم من برام مشتبه مطلب و اگر مورد رضای تو نیست اونم به من حالی کن که بفهمم گفت این دعا رو کردم که نماز خوندم و این دعا رو کردم همین تا بلا فاصلش فاصله این نشد دیدم امیر سلام الله علیه با مرکبش از را رسید و اومد پعلومم پیاده شد وایستاد نماز وایستاد نماز رو درکت نماز خوند یه نفر از دوستان حضرت شاید بودی حالا غیر دوستان یه نفر از را رسید ارز کرد یا امیرالمومنین این لشکر نهروانی ها از نهر عبور کردند حضرت چینو دومی آمد یا امیرالمومنین از نهر عبور کردند حضرت فرمود اینها از نهر عبور نمیکنند و حبیبم رسول خدا صلوات و علی و آلی فرمود قبل از اینکه از نهر عبور کنن همشون کشته میشوند کمتر از ده نفرشون باقی میمانند و از شما ده نفر هم کشته نمی شود و اینها در پایین این کو قبل از اینکه از نهر عبور کنند همشون کشته میشن از ده نفر کمتر از ده نفرشون و من این دو مرتبه و من یک نفر رو میفرستم قبل از این که شروع به جنگ بکنین یه قرآن بهش میدم میفرستم و به اینها احتجاج می که بیاد سنت رسول خدا و کتاب خدا و سنت رسول در طبق سنت و رسول و کتاب خدا بینمون عمل کنیم و دستور خدا رو اجرا کنیم و اینها پیغمبر فرموده به من اینها با تیر انقدر تیر میزنند به این بنده خدا که صورتش مانند خارپشت تیغ در میاره مثل خارپشت میشه و این کشته میشه اون وقت من دستور خواهم داد که حمله کنیم به تعدیر بنده خب خدا میگه دل من این مقداری محکم شد اولان که خبر داده از قشون عبور نکردن از نهر رفتم و فهمیدم که عبور نکردن و بعدا مهیا شدند. امیرال فرمود کی از بین شما این قرآن رو ببره و به اینها بگه که به این کتاب خدا و سنت رسول بین بین ما حاکم باشه هیچی بلند نشد فقط یه جوانی بلند شد امیرال مومنین خیلی جوانه گفت نه تو پیشین بیشین سرج دو مرتبه فرمود هیچکی باز بلند نشد همون جوان آمد فرمود این قرآن رو بگیر و برو این مطلب رو بگو رفت و اون رو تیر بارون کردن و صورتش مانند قنفز و خار پشت خار در برگشت و افتاد و مرد همین فرمود حمله کنین گفت من شک و شب هم دیگه رفت شد از خدا خواست خدایت راه نمایی کن رو اخه در این شرایط خیلی سخته بندم بودم همین شک برام پیدا میشد، شد این بندگان مقدس خدا که همینجور دویگی اون که دویگ نه مثل اصحاب مانگوسه قرآن می خونه اینا رو آدم می بیمین یا الله خیلی کار سختیه میگه خدای تعالی شبه و شک که من رو برطرف کرد فبد قبل النظرک پیش از این که در هر مطلبی دقت کنی از خدا کمک بخوا که خدا هدایتت کند اللهم ساله اللهم